نمایشگاه آپونا در طول تاریخمان همیشه رست بوده که بگویند کارهای اشتباه و بد و مسخره به ما ربطی نداره و همه را در زمانهای قدیم انجام داده بند ما همچون نمیخواهیم این سنت را بشکنیم میگوییم اتفاقاتی که در این داستان میافتد مربوط به ایام گذشته است قرار بود نمایشگاه بینال المللی شهر آپها از همه نمایشگاه های قبلی بهتر باشد. فرصت برای تبلیغات بهتر از این گیر نمی آمد. برای همه رایزنی بازرگانی نامه نوشتند و اعلام کردند برای گرفتن قفه در نمایشگاه حتی اکثر دو مهلت دارند. گیرندگان نامه با تشکر از دعوت به عمل آمده اطلاع دادند که میخواهند در نمایشگاه شرکت کنند. فقط از یک جا نه جواب نه جواب خیر در همان موقع هیئت نمایندگی کشوری که جواب نامه را نداده بود با هیئت نمایندگی کشوری که قرار بود نمایشگاه را برگزار کند در حال مذاکره برای بستن قرارداد داده همکاری بودند در مهمانی که به همین مناسبت ترتیب داده بودند رئیس هیئت کشوری که میخواست نمایشگاه برگزار کند به وزیر تجارت آن یکی کشور گفت اگر در نمایشگاه آپانا شرکت میکردید از لحاظ تبلیغاتی برای کشورتان خیلی خوب میشد. وزیر تجارت با تعجب پرسید: چی؟ آپانا؟ نمایشگاه؟ مگه قرار تو آپانا نمایشگاه باز بشه؟ رئیس هیئت تجاری گفت که دو سال است همه کشورها برای شرکت در این نمایشگاه آماده میشوند. و همه ها دارند مدام در ها و رادیو در مورد نمایشگاه آپانا خبر و گزارش میدهند. وزیر تجارت فردایان آن روز معاونش را صدا کرد چرا در مورد نمایشگاه آپونا چیزی به من نگفتین چرا نامه‌ای را که فرستاده بودند به هم نشون ندادین معاون در کمال صداقت گفت با آنکه شنیده در قاره اروپا شهری به اسم آپونا هست اما خبر نداشته که قرار است آنجا نمایشگاهی دایر شود و نامه دعوت برای شرکت در نمایشگاه فرستاده شده وزارت تجارت زیر و رو شد وزیر دستور عکید داد نامه را پیدا کند دوایر و شعبه های وزارتخانه به هم ریخت. اوضاع چنان قراقاتی شد که در این بلبشو حتی برای صادرات پنبه به مصر، گندم به کانادا، نفت به ایران، ساعت به سوئیس و واردات فندق از انگلستان، بمب اتم از عراق و هواپیمای شکاری از هبشه اقدامهایی صورت گرفت. اما نامه پیدا نمیشد که نمیشد. تازه وقتی داشتن دنبال نامه گم شده می گشتند، نامه نامه‌های پیدا شده هم گم میشد. از رایزنی بازرگانی آپانا درباره دعوتنامه سوال کردند. رایزنی داد که چیزی در مورد نمایشگاه آپانا نمی‌داند و به محض اینکه خبری در این باره به دست آورد، فورا به عرض می رساند. پس از جستجوی زیاد بالاخره در دفاتر ثبت دبیرخانه مرکزی وزارتخانه یادداشتی پیدا کردند که نشان میداد ده ماه پیش نامهی رسمی از رایزنی بازرگانی آپانا به وزارتخانه رسیده در این میان رایزنی هم اطلاع داده بود ده ماه پیش دعوتنامه نمایشگاه آپانا را با قید تاریخ و شماره به وزارت تجارت فرستاده است یعنی سرنخ پیدا شده بود حالا باید تحقیق میکردم و میفهمیدن نامه به کجا رفته آخر سر کجا گیر کرده و مانده و چه کسی آن را به سطله اشغال انداخته و کدام سطله اشغال مقصد نهایی نامه بوده کارکشته ترین و باهوش ترین کارمندان وزارتخانه مامور شدند قضیه را پیگیری کنند و بفهمند چه بلایی سر این نامه رسمی آمده. کارمندی که با بررسی دفاتر ثبت دبیرخانه مرکزی وزارتخانه کشف کرده بود دعوتنامه شرکت در نمایشگاه آپانا را به اداره تجارت خارجی فرستادهاند به دلیل مساعی فوق‌العاده‌اش دو درجه ترفیع گرفت. وقتی از مدیر اداره تجارت خارجی پرسیدند نامی که از آپونا آمده بود به کجا رفته در جواب گفت چی آپونا چشماش مدتی در خاطرات گذشته غرق شد بعد طوری که انگار بخواهد چیزی از میان آن خاطرات درآورد دستش را کرد لای موهایش مدتی سرش را با نوک انگشتان خاراند و آخر سر گفت آهان بله یادم اومد همچین نامه اومده بود خیلی گشتند اما نامه را پیدا نکرد. فقط از دفتر دبیرخانه این را فهمیدند که نامه به شعبه سوم فرستاده شده مدیر شعبه سوم گفت امم یه چیزی یادم میاد فکر کنم چون موضوعش به بخش دوم مربوط میشد فرستادیمش اونجا رئیس بخش دوم سرش را میانه دو دستش گرفت و پس از مدتی طولانی فکر کردن انگار که قانون میدست را برای بار دوم کشف کرده باشد فریاد زد یافتم یافتم آپونا دیگه درسته؟ خودشه. زود باشین این دفتر ثبت نامه ها را نگاه کنین. دفتر سبت نشان میداد که نامه رایزنی بازرگانی را به معاون وزیر دادند. جناب معاون مثل ناخودایی که در دور دست دنبال خوشکی می گردد مدتی نگاهش را به دوخت پنج شش دقیقه زیر لب گفت. آپونا، آپونا، آپونا. بدفر یاد زد. الان یادم اومد ای میگین آپونا، آپونا. خب حضرات میگفتین همون ای که برای نمایشگاه آپانا اومده من نامه رو به جناب وزیر دادم معاون برای آنکه وزیر به یادش بیاید گفت جناب وزیر یادتونه تابستون پارسال بود یه شب خوش داشتیم جنابالی رو توی ایستگاه راه آهن بدرقه می کردیم. قرار بود شما برای ملاقات کاری مهم تشریف ببرید فلوریا بنده هم همون موقع چون فوری بود ای رو که از آپانا اومده بود وزیر حرف معاونش را قطع کرد. آها بله. خب جان من از اول بگی دعوتنامه برای شرکت در نمایشگاه آپونا. چرا مدام حرفو میپیچونین؟ الان یادم اومد. وزیر کشوهای میز و کمدها را گشت. بعد گفت: چون اینجا نیست پس لابا توی جیبمه. جیبهایش را هم گشت اما نامه را پیدا رو کرد به معاونش و گفت اون روز کدوم لباسم و تنم کرده بودم معاون که چشمهایش را به سقف دوخته بود از بس فکر کرد پیشانیش چروک افتاد پس از کلی عرق ریختن گفت انگار که همین دیروز بود جناب وزیر اون روز کت اسپرت بژتون رو تنتون کرده بودین شلوار بژ روشنتون هم پاتون بود بله بله خودشه خوب یادم شلوار پاتون بود حتی یادم کفش شیر شوکلاتی پاتون کرده بودین انگار همین دیروز بود قشنگ اومد جوششم جورابتونام نایلونی و ای رنگ بود جناب وزیر اون روز خیلی شیک شده بودین خیلی وزیر فوری به تلفن کرد. هرچی چی کت به رنگ بژ دارم جیب همشونو بگردین. یه نامه خیلی مهم با استوش باشه. کمی بعد از خانه زنگ زدند. وزیر همین که جواب را شنید صورتش آویزان شد. توف به این شانس. و فرستادن خوشکشویی. فوری یکی را فرستادند کت را از خوشکشویی گرفت و آورد. هایش را گشتند. خب خدا را شکر. از جیب بغلش چهار تا برگه پیدا کردند. روی سربرگه یکیشان نوشته شده بود رایزنی بازرگانی آپانا، اما خود نوشته چه شده بود؟ خبری ازش نبود خشکشویی لباس را آنقدر با دقت با سیستم بخار خشک تمیز کرده بود که نوشته های روی کاغذ هم همراه با لکه های لباس پاک شده رفته بود با آنکه نمیدانستند روی دعوت چه نوشته شده بوده؟ به رایزنی بازرگانی آپونا خبر دادند که به هر قیمتی شده باید در نمایش کاشریر کرد رایزنی بازرگانی آپونا در جواب نامه ای فرستاد و نوشت چون به دعوتنامه دیر جواب داده شده همه غرفه های نمایشگاه پر شده و هیچ جایی نمانده. باید به هر قیمتی شده در این نمایشگاه شرکت می‌کردند چون فرصت خوبی بود برای معرفی کشور. فوراً فعالیت‌های دیپلماتیک شروع شد. با استفاده از روابط تاریخی دوستانه و برادرانه دو کشور و تاکید بر این روابط جایی در نمایشگاه آپونا جور کردند. اما اینجا هم در گوشه‌ای پرت بود، هم کوچک. با اینکه قرفه هشت کشور دیگر شرکت کننده در نمایشگاه آپانا کوچکتر بود، اما اینکه دلیل نمی‌شد، باید بزرگ و در جای آبرومن می‌گرفتند. ابتدا با تلگراف‌ها و تلفن‌ها و نامه‌ها و واسطه‌ها و یادآوری روابط وسیع دوستانه و برادرانه، بعد هم با نامه و خواهش و پول و اجاره و هزار دردسر دیگر، بزرگترین قرفه نمایشگاه آپانا را گرفت. تا بخواهن گرفه پیدا کنند، کشورهای دیگر گرفه هایشان را مرتب و تزئین هم کرده بودند. هیئتی تشکیل شد متشکل از آدم هایی که میگفتند از این کارها و اصولاً از همه کارها خیلی خوب سردر می آورند. رئیس هیئت در زمانی که حزب هنوز به حکومت نرسیده بود، خدمات زیادی انجام داده بود. برای همین باید به نوعی پاداش می گفن. میخواست روی چشم زنش که بعد از پنجاه سالگی زیر پلکایش ورم کرده بود، عمل جراحی زیبایی انجام بشود. رئیس هیئت نمایندگی بودن در نمایشگاه آپانا فرصت خوبی بود برای این عمل جراحی حیاتی. معاون رئیس هیئت نمایندگی مرد هفتاد سالهی بود از فرزندان وطن، که چون هفته قبل در انتخابات داخلی حزب مخالف به عضویت هیئت اجرایی در نیامده بود بنابر اصولی که برای خودش قائل بود حزب مخالف را رها کرده و به حزب حاکم پیوسته بود یکی دیگر از اعضای هیئت از کارمندان پرکاری بود که وقتی رئیس حزب مخالف داشته توی میتینگ سخنرانی می کرده، برق شهر را قطع کرده بود و باعث شده بود صدای رسای رئیس حزب مخالف پشت بلنگو به وزوز وز مگس تبدیل شود این کارمند که خیلی وقت بود می‌خواستن بهش پاداش بدهند با رفتن به مأموریت نمایشگاه آپانا پاداش خودش را می‌گرفت و حسابی به گشت و گذار می‌رفت یکی دیگر از اعضا چون تازه ازدواج کرده بود ماحصلش را با مأموریت نمایشگاه یکی می‌کرد پنجمین عضو هم سه سال بود مدام می‌گفت مرخصی میخواهد. چون به هر حال کسی هم برای نمایشگاه لازم بود این اینطوری قضیه مرخصی آن کارمند هم حل ششمین از هم اصولاً به دردی نمی خورد آدم لاعبالی بود. چون رفیق گرمابه و گلستان یکی از سیاستمدارهای مدارهای مهم بود برای کار کردن وقت پیدا نمی کرد. اینجا ماندنش با نمایشگاه رفتنش هیچ تفاوتی نمی کرد. یعنی مشکلی پیش نمی آمد اگر او را هم به نمایشگاه می هفتمین از هم داماد کسی بود که روی حرفش نمی شد حرف زد. خلاص همه اعضای هیئت از روی حساب و کتاب و مطالعه شده و پس از گزینش دقیق انتخاب شده بودند برای عضویت هر کدامشان دلیلی وجود داشت اما در میان آنها به یکی هم نیاز بود که واقعا به این کارها وارد باشد برای همین یک نفر متخصص هم به هیئت نمایندگی اضافه کرده بودند وقتی هیئت نمایندگی به آپونا رسید همه قرفه های نمایشگاه برپا شده بود و اجناس و کالاها هم داشت از راه میرسید از اعضای هیئت فقط آنکه متخصص بود باقی مانده بود. بقیه برای رسیدگی به کارهای شخصیشان هر کدام به سویی رفته بودند. عضو متخصص به وزارتخانه داد که فوراً باید یک پلان برای قرف تهیه شود. فوری مسابقه برای طراحی پلان نمایشگاه ترتیب دادند به پلانی که رتبه اول را به دست آورد ده هزار لیره به نفر دوم پنج هزار لیره و به نفر سوم هم دو هزار لیره جایزه دادند اما وزیر هیچکدام از پلان را نپسندید. خودش در عرض سه دقیقه پشت پاکت سیگار یک پلان غرفه کشید. الان برای اجرای این پلان به معمار و دکوراتور احتیاج بود وقتی بر برپایه غرفه به آپونا رسیدند های دیگر همگی آماده شده بودند و کالاهایی که باید به نمایش گذاشته میشد در غرفه ها جا گرفته بودند ده روز تا افتتاح نمایشگاه مانده بود از یک طرف داشتن غرفه را درست میکردند از طرف دیگر کمیسیونی برای نمایشگاه آپونا تشکیل داده بودند قرار بود کمیسیون در اولین جلسه اش مقرر کند در نمایشگاه آپونا کدام کالاها به نمایش گذاشته شود یکی از اعضای کمیسیون که عضو اتاق بازرگانی بود کالاهایی را که قرار بود به نمایشگاه بفرستند شمرد فندوق توتون انجیرخشک، پنبه چغندر، شابلوت یکی از اعضای اتاق صنایع گفت این چیزهایی که اسپوردین پیش از میلاد هم تو این اراضی میومد. ما باید محصولات صنعتیمون رو بفرستیم بله بله خب چی بفرستیم؟ کبریت، نمک خوبه، مناسبه کنسرو، <سؤال> راحت الهلغوم، حاجی بادوم دیگه؟ پارچه، جوراب خیلی خوبه شیشه، کاغذ یکی از اعضای کمیسیون که مورخ بود اعتراض کرد اینهایی که شماردین خودمون از خارج وارد میکنیم گیریم اینها رو ببریم نمایشگاه و نمایش بدیم اون وقت اگه مشتری واسهشون پیدا بشه چی؟ اگه بپرسن این رو که خودتون تولید میکنین اون وقت واسه چی از ما میخرین چی؟ مورخ حق داشت. گفت ما فقط با آثار تاریخیمون میتونیم خودمون رو بشناسونیم. درسته. حق با ایشونه. گروه مزغونچی چی رو بفرستیم. وایستنجلوی در غرفه و دوهل و سرنا بزنن. دیگه خلعت مرواری دوزی سلطان محمود رو بفرستیم. بزار خلعت ببینن یعنی چی؟ شمشیر سلطان سلیم، کلاه سلطان محمد، هنر امروزمون رو نشون ندیم؟ چرا؟ چرا؟ یک گروه موسیقی مدرن، سه هنرمند مشهور دیگر معلوم شده بود چه کالاهایی قرار است به نمایشگاه آپونا فرستاده شود. نمایشگاه آپونا افتتاح شد. فقط یکی از قرفه ها چون هنوز آماده نشده بود، دورش را با حصار چوبی پوشانده بودند. روی حصار هم پارچه نوشته‌ای چسبانده بودند که رویش نوشته شده بود: به در این مکان قرفه ای افتتاح خواهد شد. از اعضای هیئتی که برای نمایشگاه آپانا فرستاده بودند، فقط یک نفر در محل ورفه بود. بقیه یا دنبال دوا و درمان رفته بودند یا گردش ماه اصل، یا گردش در شهر. دهمین ده روز برپایی نمایشگاه بود که ها از راه رسید. ها را باز کردند. انجیر خشکی که از یکی از صندوق‌ها درآمد، کرمو بود. فندق‌ها فوسیده بود. نماینده شرکت کننده در نمایشگاه آپانا تلگرافی به وزارت تجارت فرستاد به عرض میرساند انجیرهایی که برای نمایشگاه آپانا فرستاده شده کرموست کشمش ها فاسد شده فندق نیز پوسیده است نمایندگی تجاری شرکت کننده در نمایشگاه آپانا. معلوم شده است کالاهای فاسدی که قرار بوده به کشور دیگری صادر شود به اشتباه سر از نمایشگاه در آورده برای نمایش در نمایشگاه بطری های شربت و نوشابه فرستاده ایم. وزارت محترم تجارت تا پایان کار نمایشگاه پانزده روز مانده است. به میرساند. همه شیشه های شربت و نوشابهی که برای نمایش در نمایشگاه ارسال کرده بودی در راه شکسته است و فقط یک بطری شربت سالم به دست ما رسیده است. منتظر عوامر عالی هستم که آیا غرفه را باز بکنم یا خیر؟ نمایندگی تجاری شرکت کننده در نمایشگاه ها خواهشمند است به محض اینکه آثار تاریخی که جهت عرضه در نمایشگاه فرستاده ایم، شمشیر سلطان مراد، کمربند سلطان سلیمان و البسه ینیچری و کورکسیون لباس های محلی به دستتان رسید، فوری و بدون فوت وقت قرفه را افتتاح کنید. در روز پایانی نمایشگاه مراسم افتتاحیه این قرفه برگزار میشد. بزرگترین مهمانی نمایشگاه را هم در افتتاحیه این قرفه داده بودند. چون مردم کنجکاف شده بودند بدانن این چه جور قرفه است که در طی دو ماه بر نمایشگاه نمایشگاه ناتوانستند افتتاح کنند توی قرفه سوزن میانداختی زمین نمی آمد همه جا پر آدم بود همین که از در وارد می‌شودی صدای آهنگ لاکو شنیده میشد چون گروه مزگونچی ها و گروه موسیقی مدرن نتوانسته بودند بیایند نماینده هم گشته بود بنا سلیقه خودش چند تا صفحه گیر آورده بود و همانها را پخش می کرد. لاکو کاراتچا و, و دونابی را توی عروسی‌اش زده بودند برای همین به این دوتا آهنگ علاقه خاصی داشت و خاطراتش را زنده می کرد. روی دیواری به طول 13 و ارتفاع 6 متر پسترهایی نصب کرده بودند که مراحل تولید فندق را نشان میداد و جمله های کوتاهی درباره‌ی فواید فندق نوشته بودند مثل فندق بخور، کشتی بگیر زیر این همه پوسترو نوشته و آمار و ارقام فقط یک مشت فندق گذاشته بود نماینده از میان فندوق های پوسیده فقط توانسته بود همینقدر فندق سالم سووا کند توتون و سیگار اصلا به نمایشگاه نرسیده بود سرتا سر یک سالن پر بود از عکس و تصویر و جدول و نمودارهایی که افزایش تولید سیگار را نشان میداد در میان این همه حرف و رنگ و نور و جدول و رقم یک پاکت سیگار بیرینجی خود نمایی میکرد نماینده سیگاری را که همراه خودش آورده بود اینجا به نمایش گذاشته بود. در سالن بزرگ دیگری یک شیشه شربت و یک شیشه نوشابه گذاشته بودند اما سالنی که واقعا توجه بازدیدکنندگان را جلب می کرد سالنی بود که در آن چند ویترین شیشه‌ای گذاشته بودند و داخل ها یک خلعت و یک کلاه و یک شمشیر بود عصر همان روزی که قرف افتتاح شد مدت برگزاری نمایشگاه هم به پایان رسید اشیای تاریخی را که برگرداندند قیامتی به باشود سلطان محمود شبیه مرغ پرکنده شد همه جواهرات رویش را دزدیده بودند های قیمتی روی قبضه شمشیر تاریخی دیگر سر جایش نبود نوار نقره‌ای جواهر نشان لبه کلاه را دزدیده بودند روزنامه‌ها مدام انتخاب می‌کردند حزب مخالف هم طبق معمول از کاخ کوه ساخته بود تاریخمان را دزدیدند حال چه باید کرد خدا عمرش بدهد وزیر را که اطلاعیه داد و گفت چیزهایی که دزدیده شده الماس و مروارید و سنگهای گرامبه ها نبودن چند منجوق بیارزش بودند. و به این ترتیب قابل را خاتم داد. Thank you.